دروغدار نادرستی نظری های نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی به نام خدا با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان گرامی در قسمت بیست و م برنامه برابری به همراه جناب آقای امام کرامی در خدمت شما هستیم در برنامه گذشته در مورد سوالاتی که تا به جواب قطعی علمی برای اون داده نشده بلکه فرضیه ها و نظریه های مختلف در باب اون مطرح شده رو ما مطرح کردیم که درباره خلقت انسان و نوع جهشی که در ژن انسان به وجود اومده و انسان ند امروزی به سوال دیگه ای که مطرح هستش و فرضح های مختلفی بابت اون مطرح شده و هنوز هم به اون جواب داده نشده اینه که آیا نژاد انسان های کنونی اصیل باقی مونده و جای در واقع اون پسرموهای موهای شدهش یعنی انسان های رو گرفته دانشمندان یه سر شواهدی پیدا کردن که نشان میده انسان ناندرتال منقلز نشده بلکه ژنهایی اون با نسل کنونی انسان؟ آمیخته شده برخی ها میگن نه حدود تا همین 20 هزار هزار سال پیش هم بودن ولی خب نتونستن منقرض شدن و حجم مغزشون نتونستن افزایش بدن و منقرض شدن برای تعارض این دو نظریه هم تا یه نظریه سومی که بتونه در واقع جامع و کامل باشه تا حال از طرف دانشمندان مطرح نشده سوال بعدی که مطرحه حالا من مقدمهش رو ارز میکنم میده که شواهد جدید نشون میده که بشر هنوز هم در حال تکامله یعنی به حال به اون حالت کمال در واقع گرچه حالا ما معتقدیم که کمال اصلا امکان نداره کمال یه چیزیه که رویایی اوتوپیایی هستش سرعت این تکامل بیشتر از اون شواهد جدید اندیشمندان نشون میده که بیشتر از صد برابر سطح تاریخی اون همون که برنامه عرض کردم که برنامه شناختی توش نیست به بیشتر از صد برابر سطح تاریخی اون در واقع در زمان روی آوردن انسان به کشاورزی شروع میشه اینکه چه اتفاق میفته که تو این مرحله زمانی که انسان کشاورزی رو در واقع کش میکنه یه چیز نزدیک 100 برابر اون منطقه علمی زیستشناختی پیشرفت و جهش صورت میگیره در مورد این هم در مورد این سؤال در مورد این شبه هم تا به حال جواب معینی داده نشده از به حضورتون که این سوال متره که آیا یه ژن خاصی مسئول سرعت بخشیدن به این تکامله و اون برای انسان چه بوده این در واقع این پیشرفت عجیب و غریب؟ آیا با این حال اگر سرعت تکامل تسریع شده باشه سوالی که مطرحه اینکه چرا این اتفاق افتاده؟ به چه دلیل این اتفاق افتاده؟ ممکنه که رژیم غذایی یا بعضی از بیماری ها عامل به وجود آمدن این فشارا تسریع تکامل بشر بوده یا چیزایی دیگه بوده. برخی ها حتی بیماری میگن، برخی‌ها در واقع تغییر ذائقه و نوع تغذیه رو میگن و برخی ها میگن نوع فشار طبیعتی که در واقع به انسان آورد چون انسان اومد با طبیعت یه کاری بکنه که طبیعت رو مطیع خودش بکنه، کارهایی بکنه که تابحال به حال گونه های دیگره موجودات زنده انجام ندادن و همین شد که بشر به خودش فشار بیاره اصلا فشار بیاد رو مغز در بشر و بتونه صد برابر اون سطح طبیعی صد برابر وضعیت طبیعی این مغز رشد پیدا بکنه و این جهش به وجود بیاد سوال بعدی که مطرحه در مورد نوع تیپ انسان هاست نوع تیپ پوست انسان ها بینیم که بدن انسان نسبت به گونه های نزدیک مثل میمون ها بهنه به نظر میرسه دیگه مثل بقیه پستاندار ولی پیشینیان کوهن انسان پرموتر از نسل, نسل کنونی بودند این رو تقریبا شواهد در واقع فسیلی و سنگوار شناسی این رو نشون میده خب چرا این بیمویی در بدن انسان تکامل یافته؟ یه نظریه میگه که اجداد انسان برای که در دشتهای گرم آفریقا خونک بمونند موهای خودشون رو از دست دادن و نظریه دیگه مطرحه که از دست دادن مو به انسان کمک میکنه که از حجوم انگلها و انتقال بیماریها در امام بمونه. بمونه یه نظریه دیگه هم به هست نظریه سومی هم هست که از دست دادن مو پس از تصمیم اجداد ما برای زندگی در کنار آبها به وجود اومده و اگرچه بسیار پستانداران آبزی در اندازه بزرگ به انسان در واقع به خزهایی متراکم مجهز هستم و در واقع مجهز شدن هنوز هم برای تعارض این ستا نظریه یه نظریه چهارمی که بتونه جامع و کامل باشه هنوز مطرح نشده یه سوال دیگه هم بطرحه به دیگه هم بطرحه که نظریات پیرامون وجود داره و هنوز پاسخ به اون داده نشده من یه توضیح اولیه میدم شکی در این نیستش که مغز انسان باعث تفاوت او از گونه های دیگره مغز انسان عضوی خیلی ارزشمنده اصلا آمل این تمدن بزرگی که ما الان داریم به وجود آوردیم و در این چند میلیارد سالی که کره زمین به وجود اومده تقریبا تغییر این مغز ماست که در واقع تغییر داده و شکی هم درش نیست با اینکه تنها دو درصد از بدن انسان رو شامل میشه اما حدود یک پنجم از کل انرژی بدن انسان رو از آن خودش میکنه و مصرف میکنه. این در حالیه که در حدود دو میلیون سال پیش هیچ کدام از اجداد ما از مغزی بزرگتر از مغزی یک میمون در مقایسه با اندازه بدن برخوردان نبودند. این این هم تقریبا ثابت شده است دیگه. هیچ کدام از اجداد ما باز هم تاکید میکنم از مغزی بزرگتر از مغز یک میمون در مقایسه با اندازه در مقایسه با اندازه بدن خودش برخوردار نبوده. پس عامل باعث رشد این مغز انسان شده تا اینکه به این شکل به این مقدار در اومده. یه احتمال اینه که افزایش مغز به علت استفاده بهتر اجداد ما از ابزارالات بوده. احتمال دیگه اینه که مغز بزرگتر باعث تعامل بهتر میان انسان ها بوده هستش و شاید تغییرات اساسی در محیط زیست باعث رشد مغز و توانایی در, در میان اینجا ما می‌بینیم که دو تا نظریه هستن با هم در تعارض هستن و حالا اگه تعارضی باشه ما هم بو این اینجا اینجا ما نظریه قطعی نداریم که توضیح بده. این حجم به وجود اومده مغز ما ها و این انرژی که در واقع مصرف می‌کنه مغز ما دلیلش چی بوده؟ یه سوال و شب دیگه هم مطرحه. مقدمه‌ای برای شب مطرح می‌کنم. اجداد ما حتی زمانی که مغز بز... مغزشون بزرگ نشده بود و عصر حجر نیست شروع نشده بود شروع به ایستادن کردن یعنی قبل از عصر حجر انسان شروع به ایستادن کردی یعنی ما قبل از 2 میلیون سال پیشم هم داشتیم انسانایی به انسان وجود ما یعنی انسان جاور هم داریم که قامت بوده ایستاده بوده یعنی بود انسان هایی که خمیده بودن از گونه ها و انسان نماهایی که در واقع خمیده بود. از از اونها هم جل جلوتر بود یعنی واقع ایستاده بود و قامت راستی داشت هیچ شکی در این نیست که مغز انسان اینجا در واقع شروع به چیز میکنه اهمیتش شروع به خودنمایی میکنه میبینیم که قبل از عصر حجر هم در واقع نوع برخی از انسانها شروع به ایستادن میکنه چرا انسان شروع به راه رفتن بر روی دو میکنه و هنگامی که یه سری موجوداتی شبیه اون مثل شامپانزه ها که از دستهای خود برای راه رفتن کمک می‌گیرن راه رفتن بر روی دو پا انرژی کمتری نسبت به حرکت چهار دست و پا نیاز داره و احتمالا آزاد شدن دست ها به اجداد ما کم این نظریه است آزاد شدن دست ها اون دو تا دستی که در واقع دو تا عضو ما در واقع راه می‌ریده دو تا عضو دیگه در واقع تو زمین نیستن روی آزاد هستش راست قامت خب دو تا دستش آزاد هستش احتمالا آزاد شدن این دوتا دست به اجداد ما کمک کرده که بتونه غذای بیشتری را با, خود هر... با خودش حمل بکنه. ایستادن ممکنه باعث شده که انسان بهتر بتونه دمای بدن خود رو با, کا... با کاهش سطح مورد تابش مستقیم نور خورشید کنترل بکنه. چون پستاندارانی که با چهار تا دست و پرامیه خب نور تابش خورشید بیشتر بهشون در واقع میتابه حالت افقی که دارن. ولی خب وقتی انسان دستان عمودی داره این کیس با موجودات دیگر متفاوت میشه و این دو تا دست بودن و در واقع یه وضعیت دیگهی براش به حساب میاد و اینجا سطح مورد تابش خورشید رو میتونه در, در این حالا کنترل بکنه و همچنین بتونه از دست ها برای حمل سلاح استفاده کنه باز هم اینجا نظریات مختلفی مطرحه که این هم حتی دلیل نمیشه که مغز به این سرعت بتونه پیشرفت بکنه ولی برخی میگن که نه بعد از این پاسخی که من در می میکنم یک چیز جالب من اول تحقیه بحث بکنم اینو یک چیز حدود ده،, ده هزار سال پیش برای یه سنگواری هستش مال ده هزار سال پیش میگه یه قدیمی تنیم مهره یافته ساخته از پوسته یه تقم, تقم شترمرغ و جواهرات توی انسان پیدا میشه. ده هزار سال ده هزار صد, صد و ده هزار سال پیش یه مهره یافت شده ساخته شده از پوسته تخم مرغ و جواهرات که این توی نزدیک های ترکیه امروزی در ازمیر پیدا شده که حسن این انسان جواهرات رو اون موقع انسان اون موقع درسته حالا انسان های هوموساپیانی که شکل گرفته در حال تکامل هستند ولی این که بتونن جو جواهر بسازن و این شکل از مهره بسازن این حیرت بسیاری از پژوهشگران تاریخی رو برانگیخته ولی ما تو, تو تواریخی که در واقع ازش استنادات تاریخی مختلف داریم دلیلی بر اون نمی بینیم که این رو بخواییم مثلا دلیل بر چون هنوز هم نه اصر فلزاتی شروع شده نه انسان فلزی گداخته و نه هنوز هم درست دوران سنگی هستش هنوز هم سنگ رو هم مثلا سلاح باش ساخته میشه نیزه سنگی ساخته میشه بشر با اون نیزه و با اون در واقع چاقوها مانندی که از سنگ ساخته میشه با اون شکار میکنه ولی اینکه بخواد با اون کنین هنرمندی از خودش نشون بده هنوز به این شکل به وجود نیومده بلکه یک سری جمعیت هایی هستند که در واقع کنار هم هستن و این رو هم دانشمندان نتونستن ثابت بکنن که این دلیل بر شروع یک تمدن خاصی هست چون حالا تمدن و ساختن و هاشون شنو میشه متاخر تره و سرده سال ساله تازه شروع یک نوع انسان هموساپیان جدید هستش از به حضورتون که از تاریخ تمدن ویلدورانت من یک قسمتی رو میخوام بگم در میان آثاری که از انسان ناندرتال میموره چون ما فعلا الان قسمتی هستیم که انسان ناندرتال هست انسان هو هستش و فعلا در حال جفتگیری هم هستند ولی انسان هو که در حال غلبه و تصرف این کره زمین هستش میگه که در میان آثاری که از انسان ناندرتال به دست اومده و قطعاتی از زغال و استخوان سوخته دیده میشه و میتونیم بگیم که نخستین آتشی که انسان افروخته برمیگرده به چیزی حدود چهل هزار،, چه هزار سال پیش در حال که ما قبل داشتیم احتمالا این منظور از بر آتش آتش به شکل در واقع اقلانی هستش که واقعا بشر به این رسید نتیجه رسیده این نوع بشر هومستاپیا میتونیم که میتونه یک چیزی رو آتیش بزنه و ازش نور و گرما به وجود بیاره که البته ما یواش آروم آروم میرسیم و من میگم که شما بحثایی در مورد شاهنامه هم دارید در مورد تاریخی که شاهنامه بولت و میرسیم به اون بحثا ولی فعلا داریم طرح بحث میکنیم که هنوز میگم ما برای مهاجرت ها ما دوست برنامه باید وقت بذاریم از اینجا میخوایم استفاده بکنیم که چگونه شروع شد نوع چیز بشر و از همون اندازی که انسان به آتش احترام میزنه اون رو مورد پرسش قرار میده و جانوران رو در جانوران هم از اون جانوران دیگه هم از این آتیش در واقع میترسن و از نزدیکی به اون پرهیز میکنن نشون میده که بشر خودش در, در حدود هزار سال پیش این رو به صورت خود انگیخته در واقع کشف کرده و اختراع کرده چون که جان، جانداران دیگه پستانداران دیگه و عمده پستانداران پستاندار چون بقیه جانداران ما خیلی در مورد این که مثلا مقایسه کنیم نوع تعامل اونها با مفهومی به اسم آتش رو نمیتونیم متصور بشیم بیشتر از جانداران و تا حدودی هم پرندگان هستن که اینها واقع از آتش گریزون و حراسان هستن ولی این نوع بشر و انسان هستش که حتی تو گذشته هم ما گفتیم انسان های قبلتر از اون یه حدود سال پیش داشتن چیز شبیه آتشه ولی این احتمالاً این آتش ها از این پژوهشگران نمیگن این آتش ها احتمالاً از آتش های طبیعی بودن که بشر نمی ولی از به خاطر برخی از فعل انفالات توی طبیعت انفالات توی طبیعت به وجود می اومدن ولی این آتشی که در واقع هم ویلدوراد از طریق حالا ما نقد خواهیم کرد به در واقع این سابقه ای که ویلدونارد میگه این عادتی که از 40 هزار سال پیش توبرهید که بشر به صورت خود انگیخته و از روی عقل خودش این رو به وجود میاره حالا این روند چجوری طی میشه تو این صد و ش... حدود 60 هزار سال یعنی از 200 هزار سال پیش که آشنا میشه و بشر نمیترسه هراس نمیکنه از آتش و تا 40 هزار سال پیش خودش خود انگیخته ی آتیشی رو روشن میکنه این خودش بحث های زیادی رو میطلبه که فکر کنم به برنامه‌های برنامه که نمیریسه وقت برنامه هم در حال اتمام هستش که تو برنامه‌های آینده به مسئله خواهیم پرداخت اینجا به پایال قسمت 26 اومین برنامه میرسیم شمدگان گرامی رو تا آغاز قسمت 27 به خداوند متعال میسیم خدای رو نگه داریم